در زیر عرشه ورزشگاه در فضایی باز که عرشه آفتاب گرفتن تمام می شد، در جای بسیار دلگوشا نزدیک به هفتاد و پنج یا بیشتر صندلی راحتی دیده می شد که همه را در هفت یا هشت ردیف پشت سر هم چیده بودند. فاصله ردیف ها را برای پیشخدمت کشتی زیاد گرفته بودند تا مجبور نشود پا بر لوازم مسافران کشتی، کیف های بافتنی رمانهای های جل عللا بطری های آفتاب دوربین های بگذارد که هم آفتاب گرفته بودند وقتی تدی پا به آنجا گذاشت عرشه شلوغ نبود برای خواندن نام صاحبان سندلی ها بر دسته آنها از آخرین ردیف شروع کرد در کنار هر صندلی خواه صاحبش و شوریش نشسته بود یا نشسته بود درنگ میکرد و به طور منظم از ردیفی به ردیف دیگر میرفت تنها یکی دو مسافر که تکیه داده بودند با او حرف زدند یعنی شوخیایی کردند که بزرگ گاهی در برخورد با یک پسر بچه ده ساله که بیخبر از همه در به در دنبال سندلیش می گردد می در سادگی و معصومیتش حرفی نبود اما شاید روی هم رفته از آنجا که در رفتارش آن وقار لازم دیده نمیشد، یا اصلا وقاری نمی شناخت خیلی از بزرگ نمی نمیدانستند به زبان بچه با او حرف بزنند یا آدم بزرگ زاوش کنند. شاید لباس هم با این موضوع بی ارتباط نبود سوراخ شانهای پیراهن آستین کوتاهش خوشایند نبود و گشادی و بلندی بیش از اندازه شلوارکش نیز چشم نواز نبود. چهار صندلی مخصوص هررش مکاردلها که پشتی آنها را گذاشته بودند و انتظارشان را میکشید در وسط ردیف دوم از طرف جلو قرار داشت. تدی خواه به عمد یا غیر عمد روی یکی از آنها نشست که کسی در یکی از دو طرفش ننشسته بود پاهای برهنه و برنزه شده اش را کنار هم بر تخته افقی پایهی صندلی گذاشت و تقریبا همزمان با این کار یک دفتر یادداشت کوچک ده سنتی از جیب شلوارکش بیرون آورد سپس بی اعتنا به دنیای پیرامونش مثل آنکه نه آفتابی در کار بود نه کشتی و نه مسافری و فقط او و دفتر یادداشتش وجود داشتند به ورق زدن پرداخت. های دفتر همه به جز چند حاشیهی مدادی ظاهرا با خودکار نوشته شده بود. خطش به جای خط قدیمی به شیوهای بود که توی مدرسه‌های آمریکا می نویسند و بدون آنکه چنگی به دل بزند، خانا بود. چیزی که به خطش گیرایی میداد روانی آن بود. اما به نظر هیچ کس هیچ آفریدی نمی‌رسید که این کلمه‌ها و جمله‌ها دست خط یک پسر بچه باشد. تدی مدت زیادی به خواندن نوشته هایی سرگرم شد که ظاهراً تازه نوشته شده بود و کمی بیش از سه صفحه رو پر می‌کرد. کرد. یاداشت 27 اکتوبر 1952 متعلق به تیودر مک آردل عرشه علف شماره 412 اگر یابنده دفتر را فوری به تیودور مک برگرداند، مجدگانی مناسب و جالبی دریافت می‌کند. بگردم نشان نظامی پدرم را پیدا کنم و هرجا لازم باشد بزنم. زحمت زیادی ندارد. پدرم هم بدش نمی‌آید. هر وقت فرصت را پیدا کردم، جواب نامه استاد مندلو بنویسم. درخواست کنم که دیگر کتاب شعر برایم نفرستد. کتابهایی که فرستاده برای یک سال من کافی است. حالم را به هم میزند مردی در کنار ساحل قدم میزند و متاسفانه نارگیری به سرش میخورد سرش متاسفانه دونیم میشود آواز آوازخانان سر میرسد آن دونیمه را میبیند به جا میاورد و بلندشان میکند البته خیلی غمگین میشود و با دلی شکسته گریه زاری میکند اینجا درست همان است که حسلام از دست شر سر میرود چه میشد اگر زن فقط آن دونیمه را بر میداشت و با اما در نامه این موضوع را پیش نکشم چون انگیز می میشود و خانم مندلم که خودش شاعر است نشانی اسم را در شهرک الیزابت نیوجرزی بگیرم دیدن زن و سگش لیندی جالب است هرچند خودم دوست ندارم سگ داشته باشم نامهای به دکتر واکاوارا بنویسم و از دوچار شدن به ذات و کلیه اظهار هم دردی کنم نشانی جدیدش را از مادر بگیرم هر ورزشگار را برای تفکرات فردا پیش از صبحانه انتخاب کنم اما از کوره در نروم همینطور در اتاق غذاخوری اگر پیشخدمت دوباره آن قاشق را بیاندازد از کوره در نرفم. پدر که خیلی حسابانی شد. معنی این کلمه ها رو فردا موقعی پس بردن کتاب ها توی کتابخانه پیدا کنم. زاتو بیور، اسب پیشگشی، دقل، اتحاد مسلس. با کتابدار خوشرفتاری کنم. اگر کم روی نشان داد، چند مسئله کلی رو با او در میان بگذارم. تدی ناگهان از جیب شلوارکش یک خودکار کوچک بیرون آورد. درش را باز کرد و به نوشتن پرداخت. دفتر را به جای دسته سندلی روی ران راستش گذاشت. یادداشت 28 اکتبر 1952 همان نشانی و همان مجدگانی که در یادداشت 26 و 27 اکتبر 1952 آمده. امروز صبح پس از تفکر به آدمهای زیر نامه نوشتم. دکتر واکاوارا، استاد مندل، استاد پید، آدی جناب بورکس هیک، روبرتا هیک، سنفورد هیک، مادر بزرگ هیک، آقای گراهام، استاد والتون. میشد از مادر جای نشان نظامی پدر رو بپرسم، اما احتمالاً درمی اومد میگفت که حق ندارم آن را به سینه بزنم. میدانم که نشان پیش پدر است چون دیدم که بسته‌بندیش می‌کرد. به عقیده من زندگی است پیشکشی است. عقیده من استاد والتون خیلی کچ نشان نشانداد کرد پدر و مادرم خورده گرفت خیال می همه مردم باید مثل هم باشند یا امروز اتفاق می‌افتد یا در چهارده فوریه 1958 که 16 ساله می‌شوم، حتی حرف زدن از آن خنده آور است تدی پس از نوشتن آخرین یاد داشت خودکارش را آماده گرفته بود و به دفتر چشم روخته بود انگار چیزهای دیگری برای نوشتن در ذهن داشت ظاهرا خبر نداشت که یک نفر ناظر حرکت های اوست جوانی از نرده ارشه ورزشگاه در فاصله تقریبا پنج متری ردیف اول سندلی های ارشه و پنج یا شش متری بالای سر که آفتابی درخشان از آنجا میتابید چشم از او بر نمی‌داشت. ده دقیقه میشد که به این کار سرگرم بود روشن بود که جوان تصمیمی گرفته است چون ناگهان پایش را از نرده پایین گذاشت لحظه ایستاد و همچنان به تدی نگاه کرد سپس قدم زنان از نظر دور شد اما کمتر از دو دقیقه در میان آدمهایی که همه روی سندلی هایشان نشسته بودند فوزیلان سر و کلش پیدا شد تقریبا سی ساله یا جوان بود راه روی میان ردیف صندلی را در پیش گرفت و یک راست به طرف صندلی تدی راه افتاد سایش روی صفحه رومان مسافران میافتاد. و ذهنشان را می آشوفت و نسبتا با گستاخی چون تنها آدم ایستاده و متحرکی بود که به چش میخورد. خورد روی کیفهای بافتنی و خرف و پرت های شخصی پا می گذاشت. تدی ظاهرا بی خبر از این واقعیت بود که کسی در پای سندلیش ایستاده یا حتی روی دفتر یادداشتش سایه انداخته است اما چند نفر توی همان ردیف یا دو ردیف عقبتر کلافه شده بودند سرشان را بالا کرده بودند و چنان نگاهی به جوان کردند که فقط کسی که روی صندلی عرشه نشسته باشد به کسی نگاه میکنند. طرز ایستادن جوان نشان میداد که انگار میخواهد برای همیشه در آن حالت بماند. حالتی که فقط وقتی کامل می شد که دست کم یکی از دستهایش را توی جیبش میکرد. جوان گفت: سلام ار می کنم. تدی سرش را بالا کرد و گفت: « سلام و دو جلد دفترش را به هم نزدیک کرد تا آن را ببندد. و در عین حال گذاشت تا خود به خود بسته شود جوان با سمیمیت زیادی پرسید اجازه میدی یه دقیقه اینجا بشینم این صندلی مال کسیه؟ تدی گفت راستش این چهارت صندلی مال خانواده منه اما پدر مادرم هنوز بیدار نشدن جوان پرسید هنوز بیدار نشدن؟ توی همچین روزی؟ و دیگر روی صندلی طرف راست تدی نشسته بود صندلی‌ها رو طوری تنگ همچیده بودند که دست‌هایشان چسبیده به هم بود. جوان گفت: کفران نعمته، واقعا کفران نعمته. پاهایش را دراز کرد. رانهایش به طور غیرمعمول سنگین بود و هر کدام تقریباً به تن یک آدم می‌ماندند. لباس نیروی دریایی مشرق آمریکا را به تن داشت. در فاصله میان موهای کوتاه سیخ شده و کفشهای کهنه‌اش یونیفرم چند رنگی دیده می جورابهای پشمی نخودی رنگ، شلوار خاکستری تیره، پیراهن یقهدار بدون کراوات، کتاب پایین دکمه میخورد. و کت راه راه مارپیچی که ظاهرش نشان میداد توی سمینارهای مشهور فرق و تحصیلان دانشگاه یل یا هاروارد یا پرینستان بارها پوشیده شده بود. جوان با چشم نیمه باز به آفتاب نگاه کرد و از سر تحسین گفت، خدایا چه روز من شری. موضوع هوا که پیش میاد من حالی به حالی میشم. پایش از کنار و روی پایش انداخت و گفت. راستش کسانی که منو میشنستن میدونن که هر روز بارونی برای من حکم توهینو داره. برای همینه که یه همچین روزی به نظر من ماهده آسمانیه. لحن معمولی صدایش هرچند نشان میداد که آدمی تحصیل کرده است، اما در آن چیزی خوانده میشد که انگار جوان پیش خود، به این نتیجه رسیده بود که هرچی از دهانش بیرون می آمد، از هر نظر بیمانند است، هوشمندانه، ادیبانه و حتی سرگرم کننده و هیجان انگیز است. خواه تدی به آن گوش میداد خواه کسانی که در ردیف عقب نشسته بودند، و احتمالا گوششان به حرفهای او بود. جوان از گوشه چشم رو به پایین به تدی نگاه کرد. لبخند زد و گفت، حال تو و هوا چطوره؟ لبخندش ناخوشایند نبود، بلکه دوستانه و چاشنی حرف بود و با این همه به گذشته به نفس او مربوط میشد پرسید، هیچ شده از دست هوا پاک کلافه بشی؟ تدی گفت، من زیاد تو نخ هوا نیستم. جوان خندید، سرش را به عقب خم کرد و گفت، عالیه اگه بخوای بدونی اسم من باب نیکولسنه، نمی دونم توی زمین ورزش خوب با هم آشنا شدی یا نه. البته من اسم تو رو میدونم. تدی سنگینی تنش رو به یک طرف داد و دفتر یادداشت روزانه را رو در یکی از جیب شلوارکش فرو کرد. نیکورسن با لحن کشدار گفت: موقع نوشتن داشتم تماشات میکردم. و با دستش اشاره کرد و گفت: از اون بالا راستش همه حواست جمع نوشتن بود. تدی نگاهش کرد و گفت داشتم چیزی توی دفتر یاد داشتم می نوشتم نیکلسن با لبخند سرتکان داد و برای آنکه سر حرف را باز کرده باشد پرسید از اروپا بگو خوشت اومد؟ آره خیلی زیاد خوب بود کجا رفتین؟ تدی ناگهان دستش را درست کرد و ساق پایش را خاراند و گفت راستش یه عالمه وقت میگیره تا اسم همه اونجاها رو ببرم چون ما سوار و ماشینمون شدیم و تقریبا جایی زیادی رفتیم. پشت داد و گفت گویی که من و مادرم بیشتر توی ادینبره اسکاتلند و آکسفورد انگلیس بودیم. گمونم تو ورزشگاه بهت گفتم که توی این دو محل مصاحبه داشتم بیشتر تو دانشگاه ادینبرا. نیکولسن گفت چتی؟ برای من که باور نکردنیه. آخه فکر میکردم این کارها به تو نمیاد. به کجا رسید؟ سال کردن؟ تدی گفت کی؟ به کجا رسید؟ جالب بود؟ تدی گفت هم آره هم نه ما خیلی موندیم پدرم میخواست یکم زودتر از این کشتی برگرده نیویورک اما عدی از استوکلم سوئد و اینسپروک استرالیا میومدن دیدن من این بود که موندگار شدیم ام. این چیزها پیش میاد تدی برای اولین بار او را برانداز کرد و پرسید. تا شاعری؟ نیکلسن گفت. شاعر؟ نه بابا. متاسفانه شاعر نیستم. برای چی می پرسی؟ همین جوری پرسیدم. آخر شاعرا خیلی تو نخه هوا هستن. اونا همش احساساتشون رو تو چیزهای بکار می گیرن که احساسات ندارن. نیکلسن با لبخند دستش را توی جیب کتش کرد. سیگار و کبرید بیرون آورد و گفت من که خیال میکردم دارو نداره شاعرها احساساته. مگه احساسات اولین چیزی نیست که شاعرها بهش توجه دارن؟ تدی ظاهران حرفش را نشنید یا اصلا گوشش با او نبود. با پریشان خیالی به دودکش دوتایی عرشه ورزشگاه یا بر فراز آن چشم دوخته بود. نسیم آرامی از شمال میوزید و نیکلسن به زحمت سیگارش را رو روشن کرد. آن وقت پشت داد و گفت شنیدم اون یه مشفظ فروش مزاحم تدی ناگهان گفت از آواز زنجره بر نمی آید که چه زود می میرد بر این جاده هیچ آبری نمی گذرد در این شباهنگام پاییزی نیکولسن پرسید چی گفتی؟ تکرار کن؟ تدی گفت دو شعر ژاپنیه توشون از احساسات و اینجور چرندیات خبری نیست و ناگهان خودش را جلو برد سرش را به طرف راست کرد و تو گوشی آرامی به گوش راستش زد و گفت از موقع درس شنای دیروز هنوز کمی آب تو گوشم مونده. دو تو گوشی دیگر به خودش زد. سپس پشت داد و هر دو دستش را رو روی دسته صندلی گذاشت. صندلی عرش معمولی و مخصوص بزرگ سالها بود و جسه کوچک او رویش توی چشم می اما در عین حال خودش را کاملا رها کرده بود و حتی آرام به نظر می رسید. نیکلسن به او نگاه کرد و گفت شنیدم اون یه مشفص فروش مزاحم بستانی و حسابی گیج کردی. مزورم بعد از آن به گومگوی کوتاه آخریه. تک تک اعضای ممتعنهای لایدکه رو میگم. من اینجور شنیدم. انگار بهت گفتم که ماه جوانه گذشته با البابکاک بحث مفصلی کردم. درست همون شبی که شنیدم نوارد پخش شده. آره گفت یادمه. نیکلسن به تأکید گفت شنیدم همهشونو رو حسابی گیچ کردی علمی گفت که شما آخرهای یه شب جلسه حساب خوردکانی داشته این کمونم همون شبی که نوارد پخش شد پکی به سیگارش زد و گفت اینطور دستگیرم شد که چند پیشگویی جزئی که کردی حسابی بچه ها رو گیج کرده همینطوره؟ تدی گفت دلم می خواست که چرا مردم خیال میکنن احساساتی شدن کار خیلی مهمیه. پدر و مادر من کسی رو آدم نمی دونن. مگه اینکه عقیده داشته باشه خیلی از چیزها قمنگیز یا خیلی عصبانی کنندن یا خیلی خیلی مثلا ظالمانن. پدر من حتی موقعی روزنامه خوندن احساساتی میشه منو که آدم نمی دونه. نیکلسن خاک سر سیگارش رو به طرفی تکاند و گفت خیال می کنم تو احساسات نداشته باشی. تدی فکری کرد و گفت اگه هم داشته باشم یادم نمیاد نمیادکی ازش استفاده کردم اصلا نمیدونم به چه دردی میخوره؟ نیکلسن به آرامش زیاد گفت تو خدا رو دوست داری دیگه ظاهرا که به این کار می بالی. از حرفایی که تو نوار ضرفف کردهی از گفته های اللباب اینطور برمیاد که تدی گفت: آره البته دوستش دارم اما دوست داشتن من از روی احساسات نیست. اون هیچ نگفته کسی از روی احساسات دوستش داشته باشه. اگه من جای خدا بودم هرگز دلم نمیخواست منو از رو احساسات دوست داشته باشن اینجور دوست داشتن آبکیه تو پدر مادرتو دوست داری دیگه؟ تدی گفت آره که دوست دارم خیلی زیاد اما تا دلت میخواد منو وادار کنی دوست داشتن و با مفهومی که خودت میخوای به کار ببرم باشه حرفی ندارم ببینم تو خودت به چه مفهومی میگیری؟ تدی فکری کرد رویش رو به کرد و گفت. تو معنی وابستگی رو میدونی؟ نیکولسن با خونسردی گفت حدودن میدونم تدی گفت من نسبت به اونها وابستگی زیادی احساس میکنم یعنی میخوام بگم که اونها پدر و مادر منن و ما هر کدوم کامل کننده یک دیگریم دلم میخواد تا زندن بهشون خوش بگذره چون دوست دارم بهشون خوش بگذره اما اونها من و بوپه رو خواهرم رو میگم اینطور دوست ندارن. ظاهرا ما رو دوست ندارن، مگر اینکه هر بار کمی تغییرمون بدن. اونا دلیل‌هاشون رو برای دوست داشتن ما به اندازه خود ما دوست دارن و بیشتر وقتها حتی بیشتر از خود ما. این کار درستی نیست. دوباره را به نیکلسن کرد. کمی به جلو خم شد و پرسید: الان چه وقته؟ من ساعت 10 درس شنا دارم. نیکلسن بیان که به ساعت ما نگاه کند گفت: وقت داری؟ سپس سر آستینش را بالا زد و گفت، ساعت ده و ده دقیقه است. تدی گفت، مچکرم، پشت داد و گفت، پس ده دقیقه دیگه میتونیم از حرفهای همدیگه لذت ببریم. نیکلسن پایش را رو از روی دسته صندلی گذراند، به جلو خم شد و تحصیقارش را با پا کرد و پشت داد و گفت، می میکنم تا به فرضی هندی حلول روح درست و حسابی اعتقاد داشته باشی. این که فرضیه نیست. یه قسمتی از... نیکولسن به تندی گفت. خیلی خوب. لبخند زد و کف دستایش را به تنه به نشانه دعای خیر رو به جلو به آرامی بالا آورد و گفت. فعلا از این بحث میگذریم. بذار حرفمو بزنم. پاهای سنگین و از هم بازش را روی هم انداخت و گفت. اینطور دستگیرم شده که تو با تفکر، اطلاعاتی پیدا کرده ای و به این نتیجه قطعی رسیدی که در آخرین حلول روح توی هند قدیسی بوده ای که تا حدودی ارج و قرب تو از دست دادی تدی گفت من قدیس نبودم یا آدم معمولی بودم که تو مسائل روحی پیشرفتایی کرده بودم نیکلسن گفت خیلی خوب حالا هرچی اما مسئله اینه که حس میکنی در آخرین حلول روح پیش از رسیدن به اشراق نهایی تا حدودی ارجو قبه تو از دادی درسته؟ یا اینکه من تدی گفت درسته به زنی برخوردم و تا حدودی از تفکر قفل موندم. دستش را از روی صندلی پایین آورد و ظاهران برای گرم شدن زیر رانهایش فرو برد و گفت. اما به هر حال مجبور شدم تو جسم دیگه حلول کنم و به زمین برگردم یعنی میخوام بگم اگه به اون زن بر خوردم پیشرفت روحیم انقدر نبود که بمیرم و یه راست پیشه بر رحما برم و دیگه هیچ وقت مجبور نشم پا به زمین بذارم. چیزی که هست اگه به اون زن بر خوردم تو جسم یه آمریکایی پا به این دنیا نمیذاشتم. یعنی میخوام بگم که آدم تو آمریکا خیلی دشوار میتونه مجال تفکر و زندگی روحی داشته باشه. مردم گمون میکنن آدم سر به هوا دنبال همچین چیزایی هستن. پدرم فکر میکنه که من یکم سر به هوا هستم و مادرم خب میگه فکر نمیکنم که شب و روز تو فکر خدا بودن حاصلی برات داشته باشه حتی به نظرش این کار برای سلامتی من خوب نیست نیکلسن که او را نگاه میکرد و در صورتش دقیق شده بود گفت خیال میکنم تو نوار آخری گفتی که اولین تجربه صوفیانه تو شیست سالگی بوده درسته؟ نیکلسن دیگر حرفی نزد تلی دنباله حرفایش را گرفت. اما تو چهار سالگی گاهی از بوت‌های محدود بیرون میرفتم همیشه که نه فقط گهگاه. نیکلسن سرتکان داد و گفت. جدی؟ میتونستی؟ تدی گفت. آره اینو که تو نوار گفتم. شایدم تو نوار آوریل باشه. مطمئن نیستم. نیکلسن بیان که چشم از تدی بردارد. دوباره سیگارهایش را بیرون آورد و پرسید. آدم چطور میتونه از بوت‌های محدود بیرون بره؟ سپس. تک خنده ای کرد و گفت <تصفيق> اینعایی که بخوام موضوع و بشکافم باید بگم مثلا یه تیکه چوب یه تیکه چوب دیگه طول داره ارز داره تدی گفت طول و ارز نداره اشتباه تو همینجاست همه خیال میکنن که هر چیزی در یه جا به انتها میرسه خیر نمیرسه من همینو میخواستم به پروفسور پیت بگم روی صندلی جابجا شد و لاشه دستمال کسی رو که زخیم و خاکستری بود بیرون آورد تویش فین کرد و گفت. دلیل این که به نظر میرسه که هر چیزی در یه جا به انتها میرسه اینه که بیشتر مردم این جوریات گرفتن به اشیا نگاه کنن. دستمالش رو سر جایش گذاشت. نگاهی به نیکلسن کرد و گفت: "یه ثانیه دستتو بالا بگیر." "دستمو؟ چرا؟" میگم بالا بگیری، یه ثانیه بالا بگیر. نیکلسن ساعدش رو چند سانتیمتر بالاتر از دسته صندلی نگه داشت و پرسید: "این یکی رو؟" ددی سر داد پرسید: به این چی میگن معلومه دیگه دست منه یه دسته تدی پرسید از کجا این حرفو میزنی درسته که بهش میگن دست. اما از کجا میدونی که یکیه؟ دلیلی هم داری که این یه دسته نیکلسن سیگاری از پاکت بیرون آورد روشن کرد و گفت به نظر من این بدترین نوع صفصد است باور کن دود را بیرون فرستاد و گفت این یه دسته برای اینکه یه دسته به هر کسی که قبول داشته باشی اولا باید اسمی داشته باشه تا از اشیای دیگه قابل تشخیص باشه یعنی میگم نمیشه همینطور تدی با خون سردی گفت دری از منطق پیروی میکنی نیکلسه معدبانه پرسید از چی پیروی میکنم؟ تدی گفت از منطق جواب منطقی و عقلانیه داشتم کمکت میکردم از من پرسیدی چطور هر وقت دلم بخواد میتونم از بوتهای محدود پا بیرون بذارم منم دارم میگم. موقع این کار منطقو کنار میذارم. منطق اولین چیزیه که باید از دستش خلاص شد. نیکلسن با انگشت پر توتونی را رو از روی زبانش برداشت. تدی فورسید تو آدمو میشناسی؟ کیو میشناسم؟ حضرت آدم تو کتاب مقدس. نیکلسن لبخندی زد و با خونسردی گفت: از نزدیک ندیدمش. تدی دو دلمان سپس گفت: از دست من عصبانی نشو سوالی کردی منم دارم به هر کس که قبول داشته باشی از دست عصبانی نیستم تدی که خودش رو روی صندلی عقب میکشید اما رویش بین بود گفت باشه و پرسید اون سیبی که آدم تو باغه بهش خورد یادت هست که تو کتاب مقدس اومده میدونی تو اون سیب چی بود؟ منطق بود منطق و چرندیات چیز دیگه ای توش نبود بنابراین نکته ای رو که میخوام بگم اینه اگه میخوای اشییا رو همونطور که واقعا هستن ببینی باید اون سیب و بالا بیاری. یعنی میگم اگه بالا بیاری اون وقت ماانههایی مثل چوب و ماده دردسری برات ندارن یه ریز سروتع اشییا رو نمیبینی و اگه دلت بخواد میفهمی که دستت واقعا چیه؟ میدونی چی میخوام بگم؟ حواس جمع حرفای من هست؟ نیکررسسم با کمی خشونت گفت: حواسم هست تدی گفت. بدبختی اینه که بیشتر مردم نمیخوان را همونطور که هستن ببینن. حتی نمیخوان جلوی تولد و مرگ مداومشون رو بگیرن. به جای اینکه دست از این کار بکشن و کنار خدا جایی به اون خوبی بمونن، همش میخوان تو جسمهای تازه به دنیا بیان. فکری کرد و گفت، این انبوه سیبخورها حال آدما به هم میزنن و سرش رو به چپ و حرکت داد.